همین که سلنا پا به اتاق گذاشت جینی به سرعت از جا بلند شد و به سویش رفت سلنا دیگر شلوارک به پا نداشت و پیراهند پوشیده بود و این کاری بود که لجه جینی را در میآورد سلنا غیر دوستانه گفت آز میخوام که منتظرت گذاشتم آخه مجبور شدم سب کنم تا مامانم بیدار بشه سلام اریک سلام سلام جینی به صدای آهسته که تنها سلنا میتوانست بشنود گفت من دیگه از سر پول چی؟ من داشتم فکر می کردم تو هر بار تو تنیس میاری و از این چیزا یادم رفته بود. اما تو که گفتی من پولی بالای اونها نمیدم. جینی بدون خداحافظی با اریک پیشاپیش سلنا راه بیرون را در پیش گرفت و گفت تا دمه درم را بیا. سلنا توی راه را گفت اما انگار گفتی امشب می بری سینما و پول تو می و از این حرفا؟ جینی خم شد و لوازم تنیسش را برداشت و گفت خیلی خستم گوش کن بعد از شما به تلفن می کنم امشب کارو به خصوصی داری؟ شاید سری اینجا بزنم سلنا به او چشم دوخت و گفت باشه جینی در جلو رو باز کرد و توی آسانسور رفت دکمه رو فشار داد و گفت برادر تو دیدم جدی؟ دیدی چه آدم محرکه جینی سرسری پرسید راستی کارش چیه؟ کارو چیزی داره؟ چند وقت دانشکده رو ورک کرده. بابام دلش میخواد که برگرده سر درسش اما اون اهلش نیست چرا اهلش نیست؟ نمیدونم میگه از سنش گذشته و از این حرفا چند سالشه؟ نمیدونم 24 سال درهای آسانسور باز شد جینی گفت به تلفن میکنم جینی بیرون ساختمان رو به مغرب به طرف خیابان لکسینگتون راه افتاد تا سوار اتوبوس بشود میان خیابان سوم و لکسینگتون دستش را توی جیب مانتویش کرد تا کیف پول خوردش را بیرون بیاورد نیمه ساندویچ توی جیبش بود بیرونش آورد و دستش را پایین برد تا آن را توی خیابان بیندازد اما باز توی جیبش گذاشت آخر چند سال پیش هم سه روز طول کشیده بود تا دلش رضا داده بود لاشه مرغ عید پاک را که روی خاک اره های تهاش انداخته بود دور بیندازد